داستان خواهرجان این داستان رو آی جمال سوقی از آقلا تعریف کردن یکی بود یکی نبود در روزگاران دور مرد کشاورزی با زنش زندگی می کرد اونا یه دختر و یه پسر داشتن از بعد روزگار یه روز زن به بستر بیماری افتاد و خیلی زود از دنیا رفت مرد کشاورز برای اینکه دختر و پسرش توی خونه تنها نباشن یه زن دیگه گرفت. این زن از همون روز اول با خواهر و برادر شروع به بدرفتاری کرد. همیشه به اونا سرکوفت میزد و میگفت که چشم دیدن هر جک و جونوری رو دارم ولی چشم دیدن شما رو ندارم. زن از صبح تا شب هزار جور نقشه میکشید که اونا رو از بین ببره. یه روز درویشی به خونه اونا آمد و زن رو دار و غمگین دید. علت رو پرسید. زن گفت شوهرم از زن قبلیش دوتا جونور داره که مجبورم کنیزیشون رو بکنم و خشکشون کنم. من دیگه خسته شدم و چشم دیدن اونا رو ندارم. درویش گفت این که نداره خودم مشکلت رو حل میکنم. تو فقط برام یه انعام خوبی تهیه کن زن گفت حاضرم هرچی دوست داری برات تهیه کنم تا از شر اونا خلاص بشم درویش و زن در حال صحبت بودن که مرد کشاورز قصهدار و خسته و کوفته از راه رسید درویش از مرد کشاورز پرسید تو چرا قصه میخوری مگه اتفاقی افتاده مرد کشاورز گفت من قصه نخورم پس کی قصه بخوره چند ساله دارم زحمت میکشم و بعض روی زمین میپاشم ولی زمین محصول خوبی نمیده گندم میکارم بار نمیده جو میکارم بار نمیده دی خسته شدم کاری از دستم بر نمیاد درویش کم ادای فکر کردن را در آورد و گفت یه فکری به نظرم رسید اگه به گفته های من عمل کنی، حتماً سال بعد محصول خوب و زیادی به دست میاری. مرد گفت، اگه مشکلم با حرفای تو حل بشه، با جون دل به اونو عمل میکنم. تو فقط بگو چی کار باید بکنم تا از این گرفتاری و بدبختی خلاص بشم. درویش که منتظر چنین فرصتی بود، گفت، دخترت رو بکش تو مزرعه گندم دفن کن. پسرتم بکش تو مزرعه جو دفن کن. سال بعد میبینی که چه محصول خوبی به دست میاری. توی همون لحظه دختر تو اتاق بغلی داشت موهاش میکرد. دختر حرفای اونا رو شنید و فوری آینه و رو پرداشت و به دنبال برادرش دوید تا خبر رو به اون بگه و با هم فرار کنن. برادرش با دوستاش در حال قاب بازی بودن. دختر اونو صدا زد و گفت برادر بیا برات قاب طلایی آوردم تا باش بازی کنی. برادرش به حرفهای خواهرش گوش نکرد و نیومد. دختر یه بار دیگه برادرش رو صدا زد و حرفاشو تکرار کرد ولی این بار هم برادر نیومد. دختر که دید وقت داره میگذره و هر لحظه ممکنه پدر و نامادری بیان، یکی از دوستای برادرش رو صدا زد و گفت: "پس تو بیا این قاپ طلایی رو بگیر و با اون بازی کن تا راحت از همه ببری." برادرش تا این حرف رو شنید به سمت خواهرش رفت. خوهرش رو به گوشه ای برد و تمام ماجرا رو براش تعریف کرد. گفت که دیگه نباید یه لحظه اینجا بمونیم. اگر دیر بکنیم پدر و زن بابا میان و ما رو میکشن. و پا به فرار گذاشتن. پدر و نامادری تا اومدن اونا رو بگیرن و بکشن دیدن فرار کردند. اونا دست به دامن درویش شدن که بهشون بگه حالا چجوری اونا رو پیدا کنن. درویش گفت سوزن زیر پاتون بذارید و به اطراف نگاه کنید زن و مرد سوزن زیر پاشون گذاشتن و به اطراف نگاه کردند و بچه ها رو دیدن که در حال فرار هستن زن و مرد هم به دنبال اونا شروع به دویدن کردند. زن و مرد دویدند و دویدند و دویدند تا نزدیک خواهر و برادر رسیدن زن دستش رو دراز کرد که اونا رو بگیره دختر از ترس شونه رو به زمین انداخت. شونه تبدیل به خارهای نوتیز شد. زن و مرد نتونستن از خارزار بگذرن. زن صداش رو مهربون کرد و رو به اونا گفت دخترم چطوری از خارزار گذشتید؟ دختر جواب داد ما سینخیز گذشتیم. زن و مرد هم سینهخیز شدن و نکهای تیزه خار تمام بدنشون رو خونین و زخمی کرد. خواهر و برادر دوباره پا به فرار گذاشتن زن و مرد به هر جون کندنی بود از خارزار عبور کردن و دوباره به خواهر و برادر نزدیک شدن مرد وقتی به چند قدمی اونا رسید نامادری دستش رو برای گرفتن اونا دراز کرد دختر از ترس آینش رو جلی پای اونا انداخت آینه تبدیل به دریا شد زن و مرد نتونستن از دریا عبور کنند موندن حیرون و سرگردون که چطوری از دریا بگذرن. زن با صداش رو مهربون کرد و گفت دخترم چطور از دریا گذشتید؟ دخترم جواب داد از گردنمون سنگ سیاه آویزون کردیم دامنمون رو هم پر از سنگ کردیم به پاهامونم سنگ بسیم و دل به دریا زدیم. زن و مرد تا حرف دختر را شنیدن از گردنشون سنگ سیاه آویزون کردند، دامنشون رو از سنگ پر کردن و به هم سنگ بستن و به دریا زدن سنگینی سنگا اونا رو به ته دریا کشید و هر دوشون قرق شدن خوهر و برادر باز پا به فرار گذاشتن رفتن و رفتن تا تشنشون شد برای پیدا کردن آب گشتند و گشتند تا به پیرمردی رسیدند و از اون سراغ آب رو گرفتند پیرمرد گفت اگه یک کم دیگه برید به جویهای آب زیادی میرسید که یکیشون برای اسواس یکیشون برای سگا اون یکی هم برای آهوا و یکیشون فقط مخصوص انسان است. ولی مواظب باشید که جوی آب انسان خیلی به جوی آب آهو شبیهه اگر از جوی آب آهو بخورید تبدیل به آهو میشید خواهر و برادر رفتن و رفتن تا به جوی آب اسبا رسیدن برادر آب خواست خواهر گفت یکم صبر کن این جوی آب که مال انسان ها نیست اگر از این آب بخورید تو اسب میشی. باز رفتن و رفتن تا به جوی آب سگ ها رسیدن برادر که خیلی تشنه شده بود گفت من خیلی تشنمه آب میخوام خواهرش گفت یکم یک دیگه صبر کن این جوی آب مال سگاست اگه از این آب بخوری تبدیل به سگ میشی باز رفتن و رفتن تا به جوی آب آهوار رسیدن برادر تا جوی آب آهو دید به طرف اون دوید خواهرش هم به دنبالش دوید و داد زد برادر جون برادر جون این جوی آب آهو است. برادر با صدای بلند گفت من که دیگه طاقت ندارم از تشنگی دارم حلاک میشم. خواهرش گریه کنان داد زد یه یک یکم صبر کن اگه از این آب بخوری تبدیل به آهو میشی اون وقت من چه باید بکنم. برادر تا گریه خواهرش رو دید ایستاد خواهرش بهش رسید و دستش رو گرفت و دوباره را افتادن رفتن و رفتن تا به جوی آب انسان ها رسیدن و از اون آب خوردن سیرکه شدن برای استراحت طرف درخت چنار بزرگی رفتن هنوز به درخت نرسیده بودن که برادرش یادش اومد کفشش رو کنار جوی آب جا گذاشته رو به خواهرش گفت میبینی خوهر جون کفشم کنار جوی آب جامون من چطور بدونه کفش تو این صحرا را برم تا تو یکم اینجا استراحت کنی فوراً میرم و زودم بر میگردم. گفت نه برادر تو همینجا کنار درخت بمون من میرم کفشت رو میارم. میترسم از اون آبی که برای آهواز تو بخوری و تبدیل به آهو بشی. برادرش گفت نگران نباش. من خودم زود میرم و با کفش بر میگردم. برادر دوون دوون به طرف جوی آب رفت. وقتی به اونجا رسید کفشش رو برداشت و دوباره شروع به دویدن کرد تا پیش خواهرش برگرده. توی برگشت باز تشنش شد و زورش اومد که بره به سمت جوی آب انسان ها و آب بخوره. به طرف جوی آب آهو رفت خم شد و کمی از اون آب خورد و همونجا تبدیل به آهو شد. وقتی دختر دید برادرش دیر کرده نگران شد. با نگرانی، منتظر برادرش نشسته بود که دید آهوی زیبا آروم و آروم داره به طرفش میاد و یک جو کفش از شاخهای اون آویزونه دختر تا چشمش به کفش افتاد اون رو شناخت و گفت این کفشا که مال برادر منه آهو غمگین و قصدار پیش خواهرش اومد و گفت من همون برادر تو هستم تشنه شدم و از جوی آب آهوها خوردم و به این روز افتادم دختر که قبلا قصه بود قصه دارتر شد و زد زیر گریه و گفت حالا که دیگه کار از کار گذشته بنیم یکم استراحت کنیم تا ببینیم چی پیش میاد دختر برادرش رو دنبالش راه انداخت و پیش درخت چنار رفت رو به اون گفت ای درخت چنار خم شد. درخت چنار که دلش به حال دختر میسوخت خم شد دختر آهو رو پای چنار بست و خودش بالای اون رفت و گفت ای درخت چنار راست شد. درخت چنار راست شد و دختر بالای اون رفت و نشست. کمی بعد شاهزاده سوار بر اسب کنار درخت چنار اومد تا از جوی آب عصب اصف ها رو آب بده. اسب خم شد تا از جوی آب آب بخوره. چهره دختر زیبا رو توی آب دید. اسب ترسید و رم کرد. شاهزاده دوباره اسب رو کنار جوی آب برد. اسب بار دیگه چهره دختر رو دید و رم کرد. شاهزاده مود حیرون و سرگردون که چرا اسب رم کنه و آب نمیخوره؟ نگاهی به این طرف و اون طرف کرد. بالای درخت چنار دختر زیبایی مثل پنجه آفتاب دید که تا اون روز مثلش را رو ندیده بود. شاهزاده که یک دل نصد دل عاشق دختر شده بود رو به اون کرد و گفت ای دختر لحظه ای صورتت رو بپوشون تا اصباً بتون از این آب بخوره دختر روش رو برگردوند و صورتش رو با موهاش پوشون شاهزاده اسبش رو آب داد و فوری به قصر برگشت اما مریض و بدحال شد و در بستر بیماری افتاد از شاهزاده علت رو پرسیدند و اونم تمام ماجرا رو از اول تا آخر تعریف کرد. بعد از اون افراد زیادی رو دنبال دختر فرستادن تا اون به قصر بیاد و با شاهزاده ازدواج کنه. ولی دختر راضی نشد که نشد و از بالای درخت پایین نیمد. حال شاهزاده روز به روز بدتر و بدتر میشد و پادشاه نگران حال اون شده بود. مونده بود حیرون و سرگردون که دیگه چه کسی رو بفرست دنبال اون دختر تا اون راضی بشه و به قصر بیاد پادشاه نگران و غمگین نشسته بود که پیرزنی پیشش اومد و گفت ای قبله عالم، اگر دختر رو من راضی کنم و به قصر بیارم به من چی میدین شما؟ پادشاه که نگران حال شاهزاده بود و اون رو خیلی دوست داشت جواب داد اگه بتونی دختر رو به قصب بیاری تو رو از مال دنیا بی نیاز میکنم پیرزن گفت پس برای من یه سپایه، یه دونه دیک، یه صندوقچه و یه اسب قوی بیاریم تا دختر رو به حضورتون بیارم پادشاه دستور داد هرچی که پیرزن میخواست آماده کنند خیلی زود وسایل رو آماده کردن و پیش پیرزن آوردن پیرزن دیگو سپایه و صندوق و بار اسب کرد و طرف چنار رفت وقتی پیرزن به درخت چنار رسید بدون اینکه به دختر توجهی کنه از اسب پیاده شد و وسایل رو یکی یکی پایین آورد و تظاهر کرد که میخواد غذا بپزه دختر از بالای درخت پیرزن را تماشا می کرد. پیرزن اول سپایه رو وارونه روی زمین گذاشت. زیر سپایه کمی هیزم برای اون دیگ رو سر و ته قرار داد. دختر که می دید پیرزن تمام کارها رو داره برعکس انجام میده ده تا قطع نیومد. دلش به حال پیرزن سوخت و از بالای درخت چنار داد زد. مادر جون سپایه و دیگ رو وارونه گذاشتیم. هر دوش رو برگردون وگرنه نمیتونه غذا بپزی پیرزن که منتظر بهانهی بود گفت ای دختر جوان پدر پیری بسوزه من که نمیتونم خوب ببینم اگه میتونی بیا کمکم کن. دختر گفت من از همینجا بهت میگم چه کاری باید بکنی. پیرزن گفت با گفتن تو که کاری پیش نمیره من که نمیتونم اون رو انجام بدم. دختر که دلش به حال پیرزن سوخته بود رو به درخت چنار کرد و گفت ای درخت چنار خم شد. درخت چنار خم شد و دختر پایین اومد و سپایه و دیگ رو درست کرد. خواست بالای درخت برگرده که پیرزن گفت دخترم حالا که پایین اومدی یه زحمت دیگه هم برام بکش از صندوق یکم فلفل و نمک بیار و توی دیگ بریز. دختر به طرف صندوق رفت. درش رو باز کرد ولی چیزی توی اون ندید. رو به پیرزن کرد و گفت مادر جون توی صندوق که چیزی نیست. پیرزن گفت چطور ممکنه چیزی نباشه؟ یکم خم شد دختر جون. من با دستای خودم فلفل و نمک رو توی اون گذاشتم. دختر به دقت شروع به وارزی صندوق کرد و سرش گرم شد. پیرزن از فرصت استفاده کرد و اونو هل داد توی صندوق و درش رو بست. دختر داد کشید وای آهوم آهوم. پیرزن گفت تو قصه آهو رو نخور اونو هم با خودمون میبریم. پیرزن با صندوق به قصر اومد. وادژا دید که پیرزن به قولش عمل کرده خیلی خوشحال شد و انعام خوبی به اون داد بعد امر کرد زودتر در صندوق رو باز کنند در صندوق رو باز کردن. دیدن دختری مثل پنجه آفتاب توی اون نشسته قرار شد دختر رو به عقد شاهزاده در بیارن دختر رو به شاهزاده کرد و گفت من برای عقد یه شرط دارم اگه قبول کردی به عقد تو در درمیام وگرنه عقد بی عقد. شاهزاده که نمیخواست دختر رو از دست بده گفت چه شرطی داری دختر آهو رو نشون داد و گفت اون برادر منه از آب آهو خورده و تبدیل به آهو شده حالا شرط من اینه که اون باید جای گرم و نرمی بخوابه و نوخود و کیشمیش بخوره شاهزاده گفت قصه نخور کاری میکنم که هیچ کم و کسری نداشته باشه بعد هفت شبانه روز جشن گرفتن و پایکوبی کردند و دختر زن شاهزاده شد دختر توی قصر زندگی خوبی را آغاز کرد برای آهو هم بالشی از مخمل درست کرد و غذاش هم نخود و کشمش شد شاهزاده کنیزی سیاه و که داشت اون به زندگی خوب دختر حسودی میکرد و شب و روز به فکر ای بود که دختر رو از میان برداره و خودش بشه عروس شاهزاده. روزی کنیز رو به دختر کرد و گفت زن شاهزاده های دیگه با کنیزاشون لب رو میرن و گردش میکنن و آبتنی میکنن. شما دوست ندارید با من یکم به گردش و تفری بیاید؟ دختر گفت من علاقه ای به این کارا ندارم. نمیخوام برای تو هم دردسر درست کنم. کنیز گفت اگه من خودم دوست داشته باشم چی؟ مگه من کمتر از کنیزای دیگه هستم که نباید با شما به گردش بیام؟ کنیز گفت و گفت تا دل دختر رو به دست آورد و رازیش کرد همراه اون به رودخونه برند. کنیز بارو بندیل رو بست و زن شاهزاده رو کنار رودخونه برد. آهو هم بازیکنان دنبال اونا را افتاد تا رسید به لب رودخونه. کنیز دختر رو کنار رودخونه برد و حواسش رو پرت کرد و حولش داد توی رودخونه. دختر افتاد توی آب و ماهی بزرگی که دنبال غذا میگشت دختر رو درسته گرد داد. وقتی کنیز، آهو رو دید که با نگرانی برود خونه چشم دوخته رو به اون کرد و گفت اگه در این مورد با کسی حرفی بزنی همون بلایی رو سرت میارم که سر خواهرت آوردم. آهو که خیلی ترسیده بود دم نیاورد ورد و قصده دار و غمگین به خونه برگشت. کنیزم لباسای زن شاهزاده رو پوشید و خودش رو به شکل اون در آورد و به قصر برگشت. کنیز موقع خواب شروع به خاروندن سر کچلش کرد. شاهزاده وقتی صدای خاروندن رو شنید گفت چی کار داری میکنی؟ کنیز گفت مادرم کنی قاورقا برام فرستاده دارم اون رو میخورم. شاهزاده گفت یکم هم, هم به من بده. کنیز دست از خاروندن سر کچلش کشید و گفت کاش تو تر میگفتی همه رو خوردم. شاهزاده برای خوابیدن سرش رو روی بالش گذاشت اما تا چشماش رو بست دوباره صدای قرت قرت کلیه که چل کنیز بلند شد شاهزاده پرسید دیگه چی میخوری؟ کنیز دست از خاروندن کلش برداشت و گفت مادرم کمی شکلات کنجد دار برام فرستاده دارم اون رو میخورم شاهزاده گفت "یه کمی هم بده من بخورم کنیز گفت کاش تو تر میگفتی؟ الان تمومش کردم. آهو که دید دیگه اون حال و هوای سابق رو اونجا نداره باید چشم همه افتاده به جای بالش گرم و نرم مخمل روی خار و خاشک میخوابه و به جای نخود و کشمش داره سبوس سیاه میخوره با قصه و ناراحتی رفت لب رودخونه و با سده بلند خوند. خواهر جون توشک مخمل خار سیاه شد خواهرجون. نو خود و کشمیش سبوس سیاه شد خواهر جون. دختر که توی شکم ماهی دو دختر دو به دنیا آورده بود و اسم یکیش رو حسل و اسم دیگری رو گذل گذاشته بود وقت صدای غمگین برادرش رو شنید با قصه و ناراحتی به آواز اون جواب داد. برادر جون برادر خواهر به قربونتو دهن ماهی شده جای من، روی آب پریشون موی من. حسل روی این زانوم نشسته، گزل روی اون زانوم نشسته. بگو به شاهزاده که قولت چی شد؟ مثل کنیز دل تو سیاه شد؟ آهو گریون و نالون به سمت قصر برگشت و از ترس از و آزار کنیز نتونست چیزی به شاهزاده بگه. ولی کنیز از رفتار و حرکات آهو شک به دلش افتاد که نکنه اون پتش رو روی آب بریزه و هرچی که رشته پم بکنه. پس به فکر ای افتاد تا آهو رو از میون برداره کنیز خودش رو به ویار زد و هوس گوشت آهو کرد اون شب و روز ناله میکرد و گوشت آهو میخواست شاهزاده گفت آخه آهو که برادرته کی تا حالا دیده کسی گوشت برادرش رو بخوره که تو دومیش باشی ولی کنیز پاهاش رو توی کفش کرده بود که الا و بلا گوشت آهو میخوام وقتی شاهزاده اصرار زیاد اون رو دید به ناچار قبول کرد آهو روزی سه بار کنار رودخونه میرفت و حرفاش رو به خواهرش میگفت و جواب میشنید و با قصه برمیگشت به قصر شاهزاده رد آهو رو گرفت و به دنبالش رفت. آهو به طرف رودخونه رفت و رو به اون خوند. خواهر جون، خواهر جون، توشک و مخمل خار سیاه شد، خواهر جون. نخود و کیشمیش سبوس سیاه شد، خواهر جون. و دختر هم از ته دریا از داخل شکم ماهی جواب میداد. برادر جون، برادر، خواهر به قربونت.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 گاوا چهل روز تشنگی کشیدند. روز چهل و یکم شاهزاده دستور داد گاوا لب رودخونه برن گاوا رو ول کردن طرف رودخونه اونا از بس که بی آبی کشیده بودن توی چشم هم زدن آب رودخونه رو خوردن و تموم کردن ماهی بزرگ رو گرفتن و شکمش رو پاره کردن و با تعجب دیدن زن شاهزاده همراه دوتا دخترش حسل رو اون تو نشستم شاهزاده از اون پرسید تو اینجا چی کار میکنیم؟ دختر تمام ماجرا رو برای اون تعریف کرد شاهزاده از آهو پرسید تو چرا چیزی نگفتی؟ آهو هم جواب داد از ترس کنیز اون میخواست من رو بکشه شاهزاده اونا رو به قصر برد رفت سراغ کنیز سیاه و کچلو از اون پرسید تو شلاق دوست داری؟ یا اسب چموش؟ کنیز که فکر میکرد شاهزاده میخواد هدیهای به اون بده با خوشحالی گفت اسب چموش بهتره میتونم سوارش بشم و به دیدن مادرم برم شاهزاده دستور داد اسب چموشی آماده کنن. اسب که آماده شد کنیز رو به دوم اون بستن و ول کردن تو صحرا اسب چموشم چهار نل دوون دوون کنیز رو دنبال خودش کشید و ر بعد به آهو از جوی آب انسان آب دادن و اون مثل اولش تبدیل به انسان شد اونا سالهای سال به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند. کانال تلگرامی هزار افسان. داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی